تلفن زنگ میزند، من گوشی را برمیدارم بفرمایید، ببخشید آقا، آقایی به اتفاق همسرشان، بله، میگویند که مهمان شما هستند، مهمان ما، پناه بر خدا، ما خودمان در شهر شما مهمان ناخانده ایم، بله اما عیب ندارد، فعلا که کسی نمیخواهد دستگیرمان کند، راهنماییشان کنید بیایند بالا آه اصل نگاه کن این برادر توست که از پله ها بالا می‌آید. خدای من شما اینجا چه کار می‌کنید؟ سلام سلام برنامه من را که کامل کردیم و قاب کردیم و کوبیدیم به دیوار تصمیم گرفتیم تمرد کنیم اولین تمرد قانون را استثناء کامل می کند، نظم را آشفتگی. درست است؟ اصل ریسه می رود، عروس می خندد، بچه ها میخندند. همسایه ها می خندند. مدیر فروش بلیط و همسرش میخندند. من نیز. عشق در دشوارترین شرایط،